Peace Peace Peace سلام به شنوندگان عزیز کمپانی پیس مهمون اون یکی از مهمترین مهره های رپ فارسی و میشه گفت یکی از بنیان های رپ فارسی بوده تا الان میریم که آشناشیم زیاد وقتتون رو نمیگیریم بریم برای قسمت دوم مصاحبه آشناشو امیدوارم که خوشتون بیاد و لذت ببرید حسین جان خوش اومدی اگه سلام چیزی هست بفرمایید که بریم برای سوالات سلام عرض میکنم خدمت همگی، حسین رحمتی هستم امیدوارم که هر هستید صده منه میشنم این خوب باشه امروز اومدم تو برنامه آشنا شو از کمپانی بیس به اسپانسری باز به چند تا سوال که غرب شاب بدم خلاص در خدمتون هستم زنگی مو کردم پامیداد دوشمن و شرطشون پرچم پامیداد با این ساختم یه خونه تو دل خدا هر روزم به ترلی رو این پامیداد سایی ران تو این بره او دست سای خودم کردم زیر پامو فرش من ترش نشدم که چی میمونه تش من زم نکردم ایچ مو به چشمم یعنی دیدیم با تو کش کن خدا خودش خریدت هم حال خوبم خریده نیمه کل دنیا و رنگوی توش رو دادم سگ خورد پهی رو و حال خوب دور میشم میره دور هرچی سایی بود هر چی که بسته جلوی من و رای نور مرگ و رو اختاده دیگه پای پورد و شده شیرینیم ازش. ازش این یعنی زنگی تو لحسس توان ازن توی حاله من وزرم زیر حاکم برم اما باش ندم از سه وزیت باب می خم شده گردنم فقط جلو والدینم جو ندارم قیمت رفیقات و عیبت شروع جاد در و میانم و حسین عزیز یه سری سوال هست که بیشتر سوالات شنواینده های آشنا شو میریم برای مپ اول. در مورد تاخیر در تولید و پخش مجموعه یاد و اینکه این مجموعه به کجا رسیده در چه وضعیته یه توضیحین به بچه های شنونده بدیم ممنون میشه خب در مورد آلبوم اگه بخوام توضیح بدم دلیل تاخیرش این بود که اولا ما با چند تا پردوسر داریم کار می‌کنیم تو آلبوم که با یه سریاشون اختلاف نظر خوردیم بعد ترک ها رو حذف کردیم، حالا داریم روی ترک جایگزین کار میکنیم یکی از حلیلشون بود، حالا اینکه چرا اختلاف نظر خوردیم؟ ازش طولانیه دلیل بعدیش اینه که خب بچه ها همه کنار هم نیستیم کی یه جای دنیاست، همه معمولا از سمت همه جفری انجام میشه منیجر گروه بعد تا این ایمیل بازی ها بشه یکم طول میکشه دیگه یکی دلایلش این بود خیلی مختصر و مفید بخوام توضیح بدم خلاصه تحیم میکنیم که هرچی زودتر تمامش کنیم و در اختیار شما قرار بدیم برای دانلود سکوت کن دیگه روی سادگی ندو سکوت کن میفهمی واقعیتو اخمون ببرش لمس کن به چش تنخشو بختی که دست رو ببرش این منم بگاه همیشه همونی که دوری سامه من. که همه چیشو بخه غمیم. هت فاقد تو تارگه میم. تازه نیست برام. مقدینه الان هن بخت نیی. پخو خوب خب ان که سریعتر به اون لولی که میخوایی برسه و به بهترین نحو منتشر بشه چون ما و طرفدارات منتظر موزیکات در آینده هستیم میریم برای سوال بعدی فرهنگسازی در فضای مجازی و فهاشی در کامنت ها خب حسین جان به نظرت این چیه که بین مردم شکل گرفته این فهاشی در کامنت این چیه باعثش به خصوص در این سبک به نظر من کار قشنگی نیست چون که هیچی پیش نمیره با فهاشی و کامنت بد گذاشتن به خاطر اینکه اگه انتقادی از هم دیگه داریم بهتر که سازنده باشه هم چاله چوله های کارشو حال اون آرتیست میفهمه که کجا اشتباه رفته اگه انتقاد سازنده باشه همون که مخاطب با خب اون چیزی که میخواد رو میتونه تو کارهای بعدیش از آرتیست بشنوه یا بگیره خلاصه البته چند سال اخیر خیلی بهتر شده جوه فضای مجازی دیگه کمتر میبینیم فواشی کنن ولی خب همچنان ادامه دار هست این قضیه هستن آدمایی که این کارو میکنن ازشون خواهش میکنم از همینجا نکنید این کارو و با هم دوست بشید امیدواریم میریم برای سوال سوم که سوال خیلی از بچاست میشه راجبه لیبل جوهر و فعالیتاش و اهدافی که داره برامون توضیح بدی خب در مورد جوهر اگه بخوام توضیح بدم یه لیبل جدیده که ما داریم میاریم بالا برای به قول معروف شکوفا کردن صداهای جدید نسل جدید ماشاءالله توشون کم نیست خیلیام خوب دارن رب میکنن خیلیام خوب دارن جلو میرن یعنی از ما خیلی جلوترن تا من کسایی رو میبینم که سن ندارن ولی خب فلور رو دقت میکنی واقعا عجیب غریب قویه مفهوم کلماتم اینطور کلاس جوهری لیبلیه که داره یه فضایی رو باز میکنه واسه صداهای جدید که بتونن خودشون رو نشون بدن یعنی هدف اصلیش اینه هدف بعدش هم اینه که خب لیول کاغذو زنده نگه‌ داره اینجوری که بچههایی که توش وارد میشن به قول معروف خودی نشون میدن به انتخاب هوادارا ما از اونا استفاده میکنیم برای عضو ثابت کاغذ و باشون همکاری میکنیم این یه توضیح مختصری بود در مورد جوهر حالا میاد رو کار کار میکنه بیشتر متوجه میشید چیه به یا امانو یا که من اونو مخادینی نه مخادینی دوباره خرابی یا با بدون خدا که نبازینی چرا چون بالا سر رو یه جا دیدی چرا میدوی چند تا دیگه مخصد شبی نباری رنگ خود قذش تکراری آدم ها تکراری ته نویده به خدا میدن دیدی همه اون چیزا که به میگم میگیم جوابه چرا رم سیب و چیده میدیم ببینینو همه قصه جواب جوابه میریم برای سوال بعدی چرا افرادی که اومدن تو خاقه بعد از یه مدت این لیبل دیگه با همکاری نداشته ولی خب ممرز شایه همچنان از ابتدا تا الان هست و چی باعث شده ممرزا متمایز باشه از بقیه افراد ممرزا دلیلش اینه که یعنی تا الان داریم با هم کار میکنیم به خاطر اینه که خب قوی بودن هم که اصلا شکی نیست یعنی واقعا دست و موضوعهایی میذاره که خو خیلی خاص فلویی داره که خب مختص به خودشه از همه مهمتر یکی از دلائلش اینی که تونستیم تو الان با هم کار کنیم اخلاق کار گروهی داره یعنی این خیلی مهمه توی گروه و اگر یکی اخلاق کار گروهی نداشته باشه کاملا اون گروهو میتونه اصلا بپاشونه یعنی میتونه اصلا خراب کنه اون نتیجه ای که قراره اون گروه بگیره و یکی از دلایلی که ما عرضه همچنان داریم کار میکنیم و موفق داره کاغذ میره جلو به خاطر اینکه همه بچه های کاغذ هر کسی که داره توش حالا وظیفه خودش رو انجام میده هم از منیجر، چه میدونم آرتی است اننگساس همه سو بر اینکه خب کارشونو بلدن اخلاق گروهی هم دارن به نظر من خوب این فاکتور خیلی مهمه واسه همین هم داریم خوب و قرده جلو بوشه که همت فکر بکنی کلا سر کی میره جلوم هر دوم شیری وعده گریمه خره با آراشم چه شمه میگیره ببینه جیو سلشتی هست نه میت بدم و تنفره کی هست که میگی جی میدیینست امیدت ترتیب است بالا کاغذ این کیه سرما رفتم که خب چرا همکاری بین بزرگان رب به ندرت شکل میگیره راه و راه چهاره از نظر حسین عزیز چی میتونه باشه؟ در مورد اینکه چرا همکاری بینه؟ اولا این کلمه بزرگان به نظر من کلمه درستی نیست چون که اگه میگفتین نسل یک رب خیلی بهتر بود تا بزرگان حالا در کل اینکه چرا همکاری شکل نمیگیره به خاطر اینکه خب بچه ها سبکاشون با همونگی فرق داره حالا اگه سآل اینه که چرا هل یه محور یه موضوع نمیان با هم همکاری کنن با سبکای متفاوت اونم دلیلش اینه که به نظر من خیلی بین نسل یک رپ من زیاده یعنی خب هم قبول ندارن بچه ها و اینکه از نظر دیدگاه های اجتماعی سیاسی تجزیه تعلیل های همدیگره قبول ندارن و خیلی من من تو کار این خیلی بده راه چهارش هم به نظر من همینجور سطحی اگه بخوای بهش نگاه کنی به نظر من نبودن یه مارکت درسته یعنی ما تو رپ، رپ فارسی یه مارکت درست و قوی نداریم یکی از دلایل اینکه که, این که به ندرت شکل میگیره همینه به خاطر اینکه که خب ما خ... اه... داریم یعنی خواستار این قضیه رو داریم که خب دوست دارن بشنبن طرفتارها ولی خب کمپانی که بیاد پشتش وایسه و حمایت بکنه خلاصه یعنی از این جنبه زنگ تفریح رپ و برای بچه ها در بیاره نیست وجود نداره یه همچین کمپانی کمپانی ها زیادی دارن کار میکنن ولی به طور جدی نیست یعنی مثلا حالا کسایی که دارن الان یه سوشیال مدیا بالا آوردن و ملت دارن استفاده میکنن ازش اونا رپ و کنار حالا سبکای موزیک دیگه دارن به گوش مردم میرسونن یعنی خیلی تخصصی روی این قضیه کار نمیکنن و فکر نمیکنن به نظر من وجود یه کمپانی قوی میتونه یه بیشتر کنه بچه‌ها رو بیشتر به من نزدیک کن من اونا ترسونم قفس میگی جور مرسدوم مسخره است هرچی چی دوست گردن است چرا آزاد نیچرخ در رفس اه من اونا ترسونم میله وقتی دستم همیشه زنجیره هرچی هر چی میره اینجا منطق <متصفيق> همیشه افتیره سر کو شل کو شل کنی سپاس خیلی نرم و ریز و نیش باس. اگه گیر خب سال پنجم آیا فهاشی در آهنگ ها از نظر حسین درسته و این کار آثار منفی در برد داره یا نداره خب ببین فواشی کلا کار درستی نیست ولی اینکه توی آهنگا کار درستیه یا نه ببین اگه من در مورد این قضیه بخوام توضیح بدم رب کلا یه می‌دونی که منطقش منطق سانسور نیست یعنی اگه جایی می جمله ای می که باید توش فوش باشه آره چرا که نباشه چرا باید سانسور که باید گفت چون منطق رب منطقی که سانسور نیست منطق انتقاد بی پرده حرف زدنه به نظر من توی رپ لازمه حالا اینکه کجا چه جوری استفاده بشه از کلمات رقیق تو جمله اون دیگه هنر به قول معروف دست نقاش منظور که چیکا باید بکنه که قشنگ به چشم بیاد نظر اینه که آره با اقتدار میگم آره بسه رپ لازمه فوش اینکه حالا اثر منفی داره یا نداره ممکنه شما توی جمله استفاده کنی که باره مثبت اون جمله خیلی بیشتر از اثر منفی حالا اون یه تیک فوشی باشه که توش استفاده کرده آرتیست و به نظر من آره لازمه برای رپ توی سبک رپ لازمه ولی اگه بخوایی مثلا اینجوری ببینی که این سبک رو بخواد متمایز کنه مثلا بخواد خیابونی جلوه بده یا به قول معروف لاتیش رو پر کنه طرف توی آهنگ یا به هر حال استفاده کنه از این قضیه نه قشنگ نیست به گوشم قشنگ نمیاد خلاصه ببین وجود فوش توی آهنگ رپ اگه به جا استفاده بشه به نظر من یه دیواری به نام تاروف و بین تو و شنمنده میشونه خب به این باعث میشه که شنمنده بیشتر به نزدیک باشه بیشتر بتونه حس کنه که چی داری میگی به شرطی که خب میگم طرف حالا اون رپر بتونه درست جای درست استفاده بکنه از این قضیه خلاصه منطق رپ میگم منطق سانسور نیست بنابراین خوشم نباید توی سانسور و از دیگه لاش رو فا بده کیش بدی میشیم آتا خمامله ما رو داشته فی دنبال اینی مست خاک ما رو را بده دو یه دلش سیسا ولی فرش و پر نکن جلو اون کن رو بده کم و بیش آمارم میگی داری و شده داستانه پیر زن خونه خالی هیشکنی بابا نه جلو تصویت رو خو بگیرون دونه های تصویت دودوان تا به دیگه لفظی وقت شر رو نیستی که اما من هستم. اینو پولیس میگه هر بارم تو کیس بیده میدونن که تشم بازی با ما میس چیده گل ما فیا قدیمی شاکی ها و قاضی یا سمیمی چیدم از که تو این فادی ها غریبی بیچه ها کاره بوله دستاز علی به نظر چه راه کارایی ما میتونیم انجام بدیم که کسایی که شنونده سبک پاپ هستن رو جذب کنیم از نظرت موسیقی رپ تا الان جای پاپ رو گرفته بین جوان همون یا نه. برای اینکه شما یه شنونده ای رو جذب کنی حالا تو هر سبک موسیقی فرق نمیکنه رپ، پاپ، هر چیزی. اولین چیزی که لازمه رایم و ملودی کاره. توی رپ غیر از این فاکتور فلوی خوندن آرتیست مهمه. کلماتی که استفاده میشه توش مهمه. موضوعهایی که استفاده میشه توش مهمه. اینکه شما چه جوری چه دیدگاهی یه موضوعی رو باس کنی صحبت کنی چه حرفایی رو توش بزنی خب اینا همش فاکتوراییه که میتونه شنونده جذب کنه حالا اینکه رپ جای پای پاپ گذاشته یا نه رو من فکر نمی کنم اون جای خودشه اینم جای خودشه به هر رپ جای خودش رو توی ایران باس کرده یعنی که این نیستش که مثلا شما بگی جای گزینه پاپ شده یا مثلا این چون این سبک اومده دیگه کسی پاپ گوش نمیده آره قبول دارم یکم هم همه گیر شده ولی خب جای خودش رو باز کرده چیزی نبوده که مثلا جای سبک دیگه ای رو بگیره یا بخواد هر سر رو به سبک دیگه تنگ کنه بوه دیگه شب و میشه چه کم و رفی با هم همه وحشی اور بگو چیش کممه ببین تصویر فاز صیتتم نگی یکی گرفت فروم و بری دو تو تصادی خود یارو رف زیر رو نه دیگه به من امیدی نیست من بدم دنیامو میبینم تو جلو مییم تا هر بخوااستم تو عج برم پروازی رخ بدم کندم پرامو یه مش مف چینی ببین اصلا فاز ن بالنی بیا بالاتر زندگی که جا بداننی ام میوارم کرده یعنی جوری بارم بابا کمیتونم درآم بزاررمین و لای پاشی. ایف سم بیست چیر دمازه دائه ارموانو اید سماره چرک به اینو گزار زمانو سه میگه تو وقتی اون چهره تو کار چه گسته توف تو این من باتو شه تانک شو دیده سلامت نبارو سالون تو اید که تو منم بشا من ات شه صحت ما یو این برای سوال هفتم نظرت راجبه افرادی که به اسم رب فعالیت می‌کنند در سبکهای دیسلاو و مینستریم و به هایی که به اعتقادات مردم بی‌احترامی می‌کنند نظرت چیه؟ در مورد دیسلاب ژانر دیسلاب نظری ندارم والا ولی خب یعنی به سلیغه من نیست. حالا دلیل نداره چیزی هم که به سلیغه من نباشه بگم غلطه یا مثلا بعد خونده نشه یا حصف شه. نظر خاصی ندارم. در مورد مینستریم هم خود دروغ بگم و خودم گوش میدم. باحاله. میتونه یعنی باحال باشه. ولی از نظر محتوا و موضوعی خب من بیشتر با اندرگراند آل میکنم تا مینستریم. در مورد اشخاصی هم که حالا به اعتقادات مردم تویند میکنن والا به نظر من خیلی کار مسقره‌ایه برای اینکه حالا یه سری اومدن این کاری کردن اسمشو گذاشتن تابو شکنی، در حالی که اصلا اینکه تابویی هم به خاطر اینکه هر کسی با اعتقادی بزرگ میشه قرار نیست با چهار تا فوش حالا اعتقاداتش سوست شه یا بلکس کسی که اعتقادی نداره رو بان. مثلا منی که اعتقاد دارم به چیزی بالا برم پایین برم نمیتونم معتقدش کنم که آقا یه چیزی هست و این دو تا تیپ آدم کاری به کار هم نرشته باشم به نظر من سنگین تره خیلی که دیدی یا نه کار شدی میلیو نگه نگه بیسم شه بیاالا پر کن پس <تصفيق> غره والا کنتر نه جردارم نگو مفورد جفاام میرم بگه در گفت رو ترس بشه بر همونی که کو خرد پر سرم همشون مفره میبینی بینی می گیره بل نرم عنا همشو ب درم بهشونم بگیینعلکی نرم بایس تو میگه بود پارسا نه شدم بلده یه داستان بعد باک پره میرم پیه باست با دستی که خاکی گرد داسوا. هنو تازم ببین تو فهممم هم در کیه بازنده نیم په هرچی روح هست میریم ایجا زدن و رو ما بخشیدیم ببین تو این دل پرمه هنو یه صدای نابی اون که جو مرم دویده سفته پنج این سخما فایده است ببین تو این دل پرمه هنو برا تو هم جایی هست این رو فقط اگه پرده رو بگیری کنار بدیم پس بعدی 10 دقیقه صحبت آزاد با طرفداران تیم کاغذ و افرادی که رپ رو دنبال میکنن خب در رابطه با صحبت آزاد با طرفدارهای تیم کاغذ میتونم فقط ازشون تشکر کنم به خاطر اینکه همیشه بودن همیشه ساپورت کردن همیشه حمایت کردن کارا رو دنبال کردن چیزی جز تشکر ندارم ازشون در مورد حالا کسایی که رم گوش میدن میتونم بگم که تنها صحبتی که میتونم بکنم اینی که که از جمله حالا کاغذ کاغذم شاملش میشه که سعی کنید کارای استعداد جدیدم دنبال کنید کنیدع نباشه که مثلا فقط فکوس کنید که خب از نسل یکی یا کی داره کار میده یا از نسل یکی یا کیو معرفی کردن کار اونو دنبال کنید. سعی کنید خودتون بگردید، پیدا کنید، ببینید کی داره چی میگه، کی داره درست میگه و به نظر من نقش یک طرفدار یا عوادار خیلی مهمتر از نقش یک آرتیسته توی این قضیه به خاطر اینکه اون مشخص میکنه که چه خط فکری و جلو بره، چه خط فکری باید شنیده شه درخواستم ازتون اینه که کسایی رو دنبال کنید، کسایی رو ازشون طرف کنید که بدونید به هیچ جناه و سمت خاصی وابسته نیستن یعنی هیچ درگیر هیچ حزبی نیستن چیزی رو بهتون نمیگن که دیکته شده از قبل و حالا کسایی هم که دارن تو این فعالیت میکنم میدونم اینقدر رنگ هستن که هیچ وقت وسیلهی برای پیاده شدن خلاصه حرفای جناهای سیاسی نمیشن همین صحبت خاصی ندارم مرسی از اینکه این وقت دارم. که دارم رخت تو رخت داره من قرار دادید مثل از شما که تحمل کردی شنیدین چاکر هم به امیدید دارهتون یه روزی هم نزدیک وقتختخور چه ش و پرستی تو رختخواه او برغمه کرایه دادمش به باد وحید تا اگه روزی چخید به سمت تو توش خوشت جایی ترس خوشک جایی آف است آفتابی ها سرز جنگ و بازی دست نقش های بخم بلندتر اتا اکوهای دورت روزات خوابی هم و شب که مانه توه شبیهی مینه هم امین روین قبل رفیری مینه سخت یه رو عین این و برف و بارونم بیاد با همه هم من تو اینجا منگنم تو هر وقت یه سختی های جای راهن به جای ساعت نگام کن بلکه شب چشیدی خب مرسی از شنوانده های عزیز که تا به اینجا با ما همراه بودن امیدواریم لذت برده باشین و تو بخش کامنت های اینستاگرام ما برامون انتقادا و پیشنهاداتون رو بنویسید و خواننده مورد نظرتون رو تک کنید تا بچه ها طبق درخواست شما با هنرمندان پردرخواست مذاکره کنن برقرار باشین خدا نگهدون Peace.